کتاب افسانه های جان روایت <سطور> سمد بهرنگی و بهروز تبریزی ارائه شده از کانال تلگرامی هزار افسان داستان های افثانه به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده یا سمن علی این داستان پرنده آبی یکی بود یکی نبود در روزگارای قدیم پادشاهی بود که اجاقش کور بود. یعنی بچه نداشت. روزی آینه رو گرفت دستش و به صورتش نگاه کرد. دید ریشاش سفید شده. آهی کشید و آینه رو به زمین کوبید. یه صدای در اومد. درویشی اومد تو و گفت قبله عالم به سلامت چرا افسرده خالی؟ گفت بابا درویش ریش هم سفید شده ولی هنوز بچه نشدم. درویش سیبی در وردو و به پادشاه داد و گفت اینو بگیر و نصفشو خودت بخور نصف دیگرش هم بده به زنت. بچهتون که به دنیا اومد باید تا 6 ماه تو بغل نگهش دارید. اگه یه لحظه به زمین بذاریدش دیگه نمیبینیدش. حالا من صاحب بچه بشم، شش ماه که سهله شش سال نمیذارم پاش به زمین بخوره نه ماه و نه روز و نه ساعت بعد زن پادشاه پسر زایید که اسمش رو حسن یوسف گذاشتن پادشاه دایه‌ای گرفت و بچه رو داد به دستش گفت مثل تخم چشمت مواظبش باشیا هیچ وقت به زمین نذارش بچه که دو ماه شد براش جشن خطن سرون گرفتن. شهر رو چراغونی کردن. میونه جشن و حیاهو و شادی دایه خسته شد. به این یکی گفت یه دقیقه این بچه رو بگیر. اعتنایی نکرد. به اون یکی گفت. گفت یه دقیقه این بچه رو بگیرید. نشینه ها. همه سرگرمه بزن و بشکن بودن و کاری به کار همدیگه نداشتن. جای این ور نگاه کرد، اون ور رو نگاه کرد، دید کسی نیست. پیش خودش گفت، هیچ طوری نمیشه. بچه رو میذارم همین جا و زود بر میگردم. اینو گفت و بچه رو زمین گذاشت و رفت گوشه حیات. وقتی که برگشت، دید جاتره و بچه نیست. دو دستی توی سر خودش زد و شروع کرد به های های گریه کردن. از این طرف و اون طرف روی سرش ریختن و تا میخورد کتکش پادشاه پادشاه ماتم گرفت و داد همه جای شهر پارچه سیاه کشیدن. تا اینجای داستان داشته باشید تا بریم یه شهر دیگه. توی شهر دیگه پادشاهی بود و این پادشاه دختری داشت. دختر هر روز کنار پنجره نشست و برای چهل تا پرنده دونه می ریخت. روزی همونطوری که نشسته بود و دونه خوردن پرنده ها رو تماشا می کرد، دید یه پرنده آبی هم میونه اونها هست. یه دل نستد دل آشق پرنده آبی شد. از غذا هم که خواست مشتی دونه برای پرنده ها بریزه، الانگوش لیز خورد و افتاد. پرنده آبی، النگو رو به منقار گرفت و برد. دختر با حسرت به پنده آبی نگاه کرد که پر زد و رفت. دختر مریض و بستری شد. پادشاه همه ی طبیبهای شهر رو جمع کرد ولی هیچ کدوم نتونست علاجش کنه. بالاخره یکی گفت که پادشا بده همامی درست بکنند مردم برای شست و شوک میان. به جای پول قصه بگن تا دخترت سرگرم بشه و غم و قصه ها از یادش بره. پیرزنی بود که پسر کچلی داشت. کچل روزی به خونه اومد و گفت ننه من گرسنمه کمی نون بده. ننش گفت زهر مار بخوری؟ چند ماهه که هموم نرفتم؟ تو هم برو مثل بچه های دیگه قصه ای چیزی یاد بگیر به من بگو تا برم همون. کچل گفت باشه. با ابروهای درهم هم به کوچه اومد و پای دیواری نشست. دید قطار شطوری با بار تلو داره میاد. جسد و سوار یکی از شطورها شد. شطورها رفتن و رفتن تا به در باغ رسیدن. در باغ خود به خود باز شد و شتورها رفتن تو و بارهاشون رو خالی کردن و برگشتن. کچل به اتاقی رفت. دید هر نخوردنی که دلش به اونجا هست. کمی خورد و جایی پنهان شد. مدتی که گذرهش دید چل و یک پرنده بال زنون از راه رسیدند. بال یکی از اونا آبی بود. پرنده ها پیرهنهاشون رو در رو و شدن چهل دختر زیبا. به استخ پریدن و شروع کردن به شنا. پرنده آبی پیرهنش رو که در ورد پسر رعنایی شد. به اتاق اومد. الانگوی از جیبش در و کنار جانمازش گذاشت. بعد از نماز دستاشو رو, رو به آسمون بلند کرد و گفت خدایا صاحب این الانگو رو به من برسون. بعد علنگو رو دوباره توی جیبش گذاشت و پیرهنش رو پوشید. دخترها هم از استخر اومدن بیرون. پیرهنهاشون رو پوشیدن و پرنده آبی رو برداشتن و پر کشیدن و رفتن. کچل به خونه برگشت و به پیرزن گفت: نهنه تازگی‌ها قصه یاد گرفتم. تو برو و بگو قصه رو پسرم میاد میگه. بیرزن خوشحال شد و رفت به همون و شست و شو کرد. کنیزا گفتن، حالا بیا قصت رو بگو. گفت، الان پسرم رو صدا میزنم براتون قصت رو بگه. کچل رو صدا زد. کچل اومد و شروع کرد به گفتن چیزایی که صبح دیده بود. تا رسید به جایی که یه پرنده آبی هم میون چلتا پرنده بود. دختر از هوش رفت و افتاد. کنیزا به سر کچل ریختن و تا میخورد کتکش زدن. که این چه کاری بود کردی؟ قش کرد. گلاب به پاشیدن، شوناها شو مالیدن تا حالش سر جا اومد. همین که چش باز کرد گفت این کچله کجا رفت. گفتن کتکش زدیم و بیرونش کردیم گفت زود پیداش کنید و بیاریدش پیش من. کنیزا رفتن و توی کوچه کچل و گیرواردن و اوردن پیش دختر پادشاه. دختر گفت خب بگو ببینم بعدش چی شد. کچل گفت خانم من دیگه قصه نمیگم. تو بیهوش میشی و اینا خود و خمیرم میکنن. دختر گفت هر بلایی به سر من بیاد با این پسر کاری نداشته باشید. کچل همه قصهش رو گفت. دختر به حرف اومد. حالا میتونی منو به اون باغ ببری؟ کچل گفت اگه شطر رو برگشتن بله. دختر گفت حالا برو سر کوچه وایسا. هر وقت اومدن منو خبر کن. کچل سر کوچه ایستاده بود و منتظر شطر را بود که دید دارن میان. به سرعت سمت سبت گفت خانم زود باش که اومدن. خانم دوید بیرون و هر کدوم سوار شطری شدن و رفتن. چطورها به در باغ رسیدن. در خود به خود باز شد و رفتن تو. بارشون رو خالی کردن و برگشتن. کچل دختر رو یه جا قایم کرد. کمی بعد پرندهها اومدن و شروع کردن به شنا. پرنده ی آبی توی اتاقش داشت نماز میخوند و میگفت خدایا صاحب این علنگو رو زود برسود. کچل در اومد و گفت اگه من صاحب علنگو رو بیارم، به من چی میدی؟ گفت از مال دنیا بی نیازت میکنم. کچل دختر رو صدا زد. همین که دختر و پسر هم دیگر رو دیدن، بیهوش شدن و افتادن. کچل گلاب به روشون پاشید و به حالشون آورد. پسر و دختر با هم ازدواج کردن. مدتی گذشت. دختر شد. پسر گفت این چلتا تا پرنده عاشق منه. حالا اگه تو بچه رو به دنیا بیاری و این بچه گریه و سر و صدا کنه پرنده ها خبردار میشن. هم تو رو میکشن هم بچه تو باید فکری به خالت بکنم. فردا با هم را میفتیم من پرواز کنان و تو پای پیاده. سر دیوار هر خونه این نشستم تو در بزن و بگو. شما رو به جان حسن یوسف بذارید چند روزی؟ اینجا بمونم. تا بعد ببینیم چه کار باید بکنیم. روز بعد پسر پرواز کرد و دختر پای پیاده به راه افتاد. پسر سر دیوار خونه نشست دختر در زد. کنیزی اومد دمه در. دختر گفت شما رو به جان حسن یوسف بذاری چند روزی اینجا بمونه. کنیز اومد و به خانومش گفت زن قریبه اومده دم در میگه شما رو به جان حسن یوسف بذارید چند روزی اینجا بمونم. خانم آهی کشید و گفت: الهی که داغ به دلت بشینه. داغمو تازه کردی. باز حسن یوسف رو یادم انداختی. برو بگو بیاد تو. دختر رو توی اتاق تاریکی جا دادم. چند روز بعد بچه‌شو به دنیا آورد. خانم دلش به حال اون سوخت و به کنیز گفت که شب برو پیشش بخواب. چون زاور رو نمیشه تنها گذاشت نصف شب کنیز دید کسی شیشه پنجره رو زد و گفت همو جان دختر جواب داد بفرمو تاج سرم گفت ولی در چه حاله گفت خوابیده تاج سرم پسر گفت مادرکم اومد و بچم رو مثل بچه خودش بغل کرد دختر گفت نه تاج سرم بعد گذاشت و رفت. صبح کنیز پیش خانومش اومد و گفت خانوم امشب چیز عجیبی دیدم. جوانی اومد و اینطوری گفت و برگشت. زن گفت انگار پسرم حسن یوسف برگشته. امشب خودم پهلو زاو میخوابم. بعد هم غذاهای خوبی برای دختر پخت بچه رو تر و خوش کرد. لاحوف و تشکش رو عوض کرد و شب پهلوش خوابید. نصف شب باز کسی شیشه پنجره رو زد و اومد تو هما جان بفرما تاجه سرم شاه ولی در چه حاله خوابیده تاجه سرم مادرکم اومد و بچم رو مثل بچه خودش بغل کرد بله تاجه سرم اون وقت خواست برگرده و برکه زن بلند شده و بغلش کرد گفت پسر جون دیگه نمیذارم از پیشم بری حسن یوسف گفت مادر جان چهل تا پرنده آشق منه. درویش گفته بود که نباید تا شیش ما من منو زمین بذاری. تا دایه منو زمین گذاشت پرنده ها از کمین در اومدن و منو برداشتن و بردن. مادرش گفت حالا باید چیکار کار کنی؟ پسر گفت توی حیاتمون تنوری درست کنید یه طرفش هم راه فراری بذارید. من به پرنده ها میگم خودم رو به آتیش میزنم. میگن نه نزن. میگم نه حتما باید بزنم. میگن اگه تو خودتو به آتیش بزنی ما هم میزنیم. من اتنایی نمی کنم و خودمو به آتیش میزنم و از سوراخ در میرم. اونا میسوزن و خاکستر میشن. فردا صبح زن دستور داد توی حیات تنور بزرگی درست کردن و یه طرفش سوراخی گذاشتن. تنور رو آتش کردن. حسن یوسف به چل پرنده گفت میخوام خودمو به آتیش بزنم. پرنده ها گفتن نه نزن. گفت نه حتما باید بزنم گفتن اگه تو خودتو به آتیش بزنی ما هم میزنیم. حسن یوسف اعتنایی نکرد و خودش رو انداخت توی آتیش و از سوراخ در رفت. چل پرنده به دنبالش به تنور افتادن و سوختن و خاکستر شدند. حسن یوسف پیراخن پرنده آبی رو در آورد. پادشاه فرمان داد شهر را آزیم بستن هفت شبانه روز توی خونه ها شم روشن کردن و سر کوها آتیش درست کردند. به مراد دلشون رسیدن سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها طبیعت های زیبا و نایاب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 ادساین مهران دوستی